سپانسر برنامه که شنیدید دکتر سیامک منجزی، مشاور کودک و خانواده و متخصص روانشناسی اعصاب بوده است. هر پنشنبه نه تا ده شب همراه با دکتر منجزی در برنامه راه زندگی. وبسایت اینجا صدای کافه شبان است و من پیمان امتی پور دعوت می کنم از همه شما خوبان که از دوشنبه تا جمعه هر شب و ساعت ده تا ده و سی دریفه شنبنده ما باشید سوار بر انواج راژیو ایران 670 ایم Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Cine Valley, Los Angeles. Mars hay danesh. Dar namin yaz arjuman-e-sadan va pazhooshgaraan-e-edam. Jahan yaadgar ast va ما رفتنی بگیتی نمانت جز از گفتنی بگویان چه داری و بفضای نیز ز گفت خردمند برتر چه چیز؟ با عرض عدب خدمت دوستان، هموطنان و همزبانان و عزیزی که به برنامه مرزهای دانش گوش فرامی دهند برنامه که از طرف انجمن استادان و پجوهشگران ایرانی هر هفته خدمت شما تقدیم میشه با هدف, با هدف ارتقاء دانش و دانشگستری در جامعه ایرانی انجمن استادان و پجوهشگران انجمنیست غیر انتفاعی، غیر سیاسی، غیر منصبی انجمنیست هرفهی که در ارتباط با جامعه ایرانی بیش از دو دهه، تقریباً داره میشه سه دهه در خدمت جامعه ایرانی بوده و برنامه مرش های دانش یکی از خدماتی است که انجمن و استادان و پژوهشگران ایرانی خدمت شما تبدیم میکنه یکی از اهداف ما معرفی چهره های برتر جامعه ایرانی و نیز آشنا کردن هموطنان عزیز با محوده های جدید در زمینه پژوهش ها و دستآورد های جدید و مدرن دنیای ان. بار دوم که افتخار دارم در خدمت جناب علی آشوری باشیم جناب آشوری شاعر نویسنده و پجوهشکری هستند که گستره تحقیقاتشون زمینه های متعددی منجمله زبانشناسی، فلسفه، فیلم و ادبیات رو در بر میگیره با وجود این که رشته تحصیلی آقای علی آشوری در ایران ریاضیات بود بعد از مهاجرت به ایتالیا و سپس امریکا رشته های فلسفه و نیز فیلم رو برای ادامه تحصیلات انتخاب کردند از آقای علی آشوری سه کتاب شعر به نام های رنگ و رقص دریا چند برگ نمدار سکوت ارقوانی شب منتشر شده است. کتاب مجموعه مقالات ایشان شامل مقالات متعدد در زمینه زبانشناسی است. کلاس های متعددی در زمینه زبانشناسی در دانشگاه ایالتی سندیگو تدریس می کنن من جمله کلاس های تیمولوژی و فونولوژی و نیز زبان کردی با تسلطی که ایشون به زبان کردی دارند اشعار زیادی رو از زبان کردی و نیز از زبان انگلیسی به فارسی برگردوندند و در مجلات مختلف ادبی منتشر کردند. در برنامه ی گذشته در ارتباط به رابطه زبان و فرهنگ از ایشون آموختیم. و در برنامه امروز قرار است در ارتباط با رابطه متقابل بین موسیقی و زبان صحبتی داشته باشیم. جناب آشوری عرض ادب و سلام دارم خدمت شما. با سلام به شما و شنوندگان شما. امیدوارم امروز ساعت خوبی رو داشت خیلی ممنون از محبتتون و ممنون از اینکه وقت عزیز خودتون رو در اختیار برنامه مرس های دانش قرار دادید. من از شما متشکرم که ای فرصت رو به من دادید که و که با هم تقسیم کنیم و فرصت گفتگوی داشته باشیم ممنونه جنابالی جناب به آشوری اگر اجازه بدید از یک سوال بدیهی شروع میکنم البته در بادی هم بدیهی ولی در واقع همینطور که مستحذری دوستون بعضی وقتا سوال کردن از چیستی و چرایی بعضی از پدیده هایی که انسان به طور روزمره با اون پدیده ها سرکار داره در بادی هم کمی عجیب ممکنه به نظر آدم ولی خب در حوزه علم و دانش تلاش و کوشش همیشه برای تعین ماهیت ها و چیستی ها و چرایی های این پدیده هاست و این است که دانش انسان رو افضایش میده میخواستم ازتون بپرسم که ماهیت زبان چی هست و ماهیت موسیقی قبل از اینکه رابطه رابطش رو صحبت کنیم از موسیقی شروع کنیم موسیقی چیه جناب آشوری؟ بله مبیرید به... ب... ممکنه خیلی کلیشه به نظر برستم تو که قبلنم گفتم ولی حال در حوزی پجوریش اکادمیک و حوزهای تخلیخی همیشه به ریشی واجه برگشتن خیلی مهمه خود واجهی موسیقی یه واجهی که به ظاهرن از موسیقی عربی گرفته شده که ریشی در لغت یودانی موزیک داره که به, نن... به معنای اونار موس ها که الهگان الهام بخش یا خدا خدایان الهام بخش بودند که در لاتینی تبدیل شد به لا که واژه موزیک و موسیقی در زبان های اروپایی مورد استعمال قرار گرفته اما بر اساس تخریقات دیگری واژه موسیقی واژه کهن مصریه یک کهان مصریه که به معنی گرد هم آمدن صداست که برای یه بسطلاه برای جشنها به کار می بردن صداهایی ترکیب می که بهش می موشگاه مشتگاه, مشتگاه. یک بخشی از لغت ها به سطلاه که صرفاً از داویی ریشه های واژه را بر اساس مقولات تعین شده هندو اروپایی ندیدند، واجی موزیک را که امدتاً به معنی 90 درستد، 95 درستد برای این باورند بر همون ریشهی که من الان تعریف شکردم اما نظر دیگر هم است که نه این واجی مصفیه مصفی که که از طریق مصف وارد ادبیات یونان شده و از طریق یونان به لاتین و لاتین به تمام جامعه خواهر میانه از جمله ابری و عربی و بعدها از جمله زبان ایرانی که باب تحت باز تلفز خود ما به کار میره موسیقی نه موسیقی بصلا. موسیقی چیست؟ بین این پاسخ بین این پرسش مثل که مثلا سال بشه که هنر چیست؟ خیلی دوشواره توضیح دادن موسیقی چیست؟ خیلی از به اصلاف فرهنگایی که دهول و حوش تعریف موسیقی تدبینی یافتند امدتن به صلاح محدود به معنای مشخصی ازش فرزن پرهنگ مختصر روبر فرزن میگه که ترکیب صداهای سازمان یافته است یا موسیقی است که تا صداها را ترکیب میکنه و میافرین صداها را اما در این تعریف های جاهای قاده های تنظیم توجه نشده زیرا که مسلمن برای اینکه مکان و زمانهای مختلف قاعده های صدا بر اساس دل... کردارها و دل... دلالتهای اجتماعی فرهنگی انسان تعیین میشه صدایی فرزن در که شما میگین صدای مطبوعی را تنظیم کردن در یک فرهنگ مثلا فرهنگ مریم یا فرهنگ کوچک فرانسوی دانشنامه موسیقی و این باور که صداهای مطبوع را نظم بخشیدن ولی ممکنه اون صدایی که شما مطبوع میپنداریدیش در زبان فرانسه ممکنه در ادبیات آمازون در فرهنگ آمازونی در فرهنگ خاورمیانی در فرهنگای گناگونه انسانی اون صدا صدای نامازونی یا به اصطلاح صدای نامطبوعی باشه روی اساس خیلی سخته که تعریف دقیق مشخصی به موسیقی داد بیشتر از اون میشه گفت که موسیقی اینجا رابطش با زبان مشخص میشه همینی که در حوزی شنیداری قرار گرفت تاثیرات عاطفی را گذاشت او تاثیرات عاطفی وقتی که حوزه بیان میگیره یعنی به صورت تووری شروع می... حوزر پاره می کنه یا فن بیان شروع میکنه به بای... به خود را نمایش دادن ناگزیری با بافتا ها زبانی او توضیح بدی و این اساس اینجا ارتباطی بین موسیقی همچون موسیقی و موسیقی همچون که شنیدی و دوست داشتی بیانش کنی رابطهی پیدا میشه که گفتمان موسیقی یا دیسکورس موسیقی را به گفتمان زبانی یا دیسکرس زبان نزدیک میکنه این یک نکتهیه نکتهی دیگر این که بخشی بر این باورن مثل زبانشناس ها که زبان خودش محصول صدا این ترکیب صداها از اون جملات حروف می سازه ترکیب حروف و جملاتی می سازه که اتفاقا مثلا در حوزه موسیقی در حوضه موسیقی شناسی یعنی به اصطلاح اروپایی و زبان انگلیسی موسیکولوجی که ما می شه تو تجمهش کرد موسیقی شناسی موسیق ش... موسیقی شناسی یا موسیقی شناختی تو فارسی این در رابطه با چه؟ در رابطه با زبان قرار میگیره موسیقی برای که مناسبات فرهنگی، پیشزمینه فرهنگی، تحویل فرهنگی، عاطف فرهنگی، تاثیرات فرهنگی بر اساس قواعدی که تو شک گرفتی، جان گرفتی، روشت کردی شروع میکنی عاطفت بیان میکنی و به موسیقی و این صدا میگی این صدا، قشنگ اون صدا، بده اینجا رابطی موسیقی و زبان دوباره مطرح میشه دو که در موسیقی مثلا وقتی شما یک قطعه ای را بیان میکنید این قطعه در واقع قطع یعنی چه یعنی تن ها، ارتفاع شدت های سووتی، گامها، ریتم ها، تنینها و لحناات. بعد ولی شما این قطعه را با واژی قطعه با جمله یعنی درست با زبان مباره شروع میکنید کنید توضیح دادنش. از این لاظه که بخشی از بسلام مثل متفاید مثل همریش سینکر عسیشی، یواختی بر این باور بود که میگفت که اصلا زبان شناسی و موسیقی در واقع بر اساس صوتان و چون بر اساس صوتان میتوان جملات، کلمات، عبارات و پاراگراف ها و بعد آرام ما را مقالات، مقالات عاطفی، مقالات علمی، مقالات سیاسی، مقالات اجتماعی از موسیقی ایجاد کرد. نادرست اینکه به این, این باور بود و بر اساس گفتار در زبان شناسی مخاص با تحلیل گفتار به گستری زبان و موسیقی رابطشان را پیدا کنه و که در اصطلاحات موسیقی هم در واقع از زبان شناسی گرفته شده دیگه وقتی شما وقتی میگید به اصطلاح عبارت جمله بیان یا خطب موسیقی در واقع دوباره بر اساس شناختی که از زبان و ادبیات که نتیجه زبانه دوباره خبکا کتابوریز میکنید مقعولات میکنید مقعوله ازش میسازید و گناه های مختلفش به دست میدید یا ازش استنبات میکنید جناب آشوری عزیزگی اجازه بفرمایید به آگه های بازرگانی رسیدیم به این پیام ها گوش بکنیم و خدمتتون دوباره برگردیم که بحث شیرینی رو ادامه بدهید دکتور شادن سرابزاده در آی اینستیتیوت آف ساترن کالیفرنیا بورد سرتیپاید در شهر انسینو چشم پیزش متخصص و جراح آب مروارید با پیشرفته ترین متد در خدمت شماست برای تشخیص بیماری های آب سیا, دیابت، میکیلر دی و خشکی چشم با آی اینستیتیوت آف ساترن کالیفرنیا تماس آسد فرمایید هشتد و هشتد شیشتد و دو هزار بیا اوم چ پیچ با چشم زور براننگ الکساندر استندری ای ننگاو بهگفته و الکساندر در طلاق شم همین که بس اونم حق به مبل همین نگاوی به میه به نگاو هی به و زود کرد بهگفتم چه یاور رو ببو کرد که پیکاو چ پساو گفته اومده پیش عزیز نترس از هوابس ن از تیغ تیز به دست خود را دست من را بگیر باشم تو را در دیم حال نسه دستگیر در هفتخان شرکت های بیمه در کنار شما و برای شما خواهم جنگیر